کتاب افسانه های مردم کره، ترجمه مجید ملکان و حال واحدی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسان صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی، گوینده عظیم علی گلزاده داستان روح پاک و هایرانگ دانگ روزگاری در دهکدهی ساحلی به نام آنینجین در ساحل دریای شرق در منطقه کانگونگ ماهیگیری زندگی می کرد. ماهیگیر دختر دم بختی داشت که نتونسته بود شوهری براش پیدا کنه علت شوهر نکردن دختر زشتی یا بداخلاقیش نبود، بلکه اون به ازدواج با آدمای معمولی هم نمیداد. حس می کرد خیلی برتر و بالاتر از اونه که با فردی عادی ازدواج کنه، به قدری مقرور بود که هیچ مردی نظر او به خودش جلب نمیکرد. روزی پیرزنه که همسایه دیوار به دیوار اونها بود، به دیدن پدر دختر اومد و به مرد ماهیگیر گفت بهتر دخترش هایرانگ با گامشو پسر بزرگ نلبند دهکدهی روبروی اونها ازدواج کنه هایرانگ مرد جوون رو خوب میشناخت ولی اون مرد مورد نظرش نبود چون بی ارزه بود و مانند زغال سیاه هایرانگ از اینکه، شوهر آیندهش چنین مرد ساده و احمقی باشه عصبانی شد برای آروم کردن خشمش به ساحل رفت در ساحل از کنار نسترن‌های خوشبو رد می‌شد مثل اینکه اونها داشتند زمزمه می‌کردند که شوهر تو باید مثل ما زیبا باشه هایرانگ ساحل رو ترک کرد و به اطراف دهکده رفت در اونجا پدرش رو دید که به کمک نجار جوون ناشناسی قایق ماهیگیریش رو تعمیر میکرد. بعد از اینکه کار تعمیر قایق تموم شد، جوون گفت: خب پیر مرد دیگه کارمون تمام شد. از تعمیر قایقت راضی هستی؟ عالیه. خیلی خوب تعمیرش کردی. واقعا نجار قابلی هستی؟ کجا تعمیر قایق رو یاد گرفتی؟ من در دوران آوارگی و خونه بدوشی این کار یاد گرفتم چون در بچگی پدرم رو از دست دادم و همچنین مادرم را هم بعد مدتی از دست دادم بنابراین مجبور شدم خودم و اداره کنم و رو پاهای خودم بیستم تعمیر قایقهای شکسته تنها کاریه که میتونم انجام بدم. اما اینکه شما میگین نجار بسیار خوبی هستم، نظر لطف شماست. تو جوون بسیار معدبی هستی. نه تنها مهارتت قابل تحسینه، بلکه فکرت هم خیلی خوب کار میکنه. از لطف شما ممنونم. ازدواج کردی؟ نه چه کسی دخترش رو به خونه به مثل من میده؟ هایرانگ میخواست پیش پدرش بره اما با وجود حضور اون جوون غریبه جلو نرفت. هرچند با دیدن پسر جوون قلبش لرزید چون اون خیلی زیبا بود. با خودش گفت چقدر زیباست. به نظرش رسید که سرانجام مرد جذابی وارد زندگیش شده. با خودش گفت چرا پدرم میخواد منو به مرد احمقی مثل گامشو شوهر بده؟ چرا منو به مرد زیبایی مثل این نمیده؟ از آن روز به بعد رفتار هایران تغییر کرد. اون آشق نجار جوون شده بود. بهتر لباس می پوشید و آواز می خون. اما مادرش به این خیال بود که دخترش چقدر عوض شده. به پدرش گفت حتما آشق گامشو شده. چون از چند روز پیش که اون واسطه ازدواج نام گامشو رو آورده رفتارش تغییر کرد. نکنه در دلش اونو دوست داره. پدرش گفت به نظر منم همینطوره. من شخصا فکر می کردم نجار جوونی که قایق منو تعمیر کرد لیاقتشو داره. برا همین اونو برای مدتی استخدام کردم تا هایرانگ اون با همدیگه رو بیشتر بشناسن. اما این کار بیفایده بود. فورا باید اونو مرخص کنم و ترتیب ازدواج هایرانگ و را را هم بدن همون شب پدر و مادر هایران تصمیم گرفتند چه زودتر ترتیب ازدواجشو بدن دختر تو آشپس خونه داشت ظرف می که صداش زدند و گفتند دختر عزیز ما می دونیم تو چی میخوای؟ میخوایم هرچه چه زودتر ترتیب عروسی تو بدیم اینقدر تو انتخاب سختگیر نباش چون اگه بخوای با بهترین مرد دنیا ازدواج کنی هرگز چنین چیزی نصیبت نمیشه. مردی که تو انتخاب کردی مورد قبول ما هم هست چون اون بسیار خوشقلب، پرتلاش و با استعداده. هایرانگ در حالی که به نجار جوون که پدرش اونو تحسین کرده بود فکر میکرد گفت نظر شما چیه؟ دختر تصور کرد پدر و مادرش ترتیب عروسی اون و نجار رو میدن. پس پیشنهاد اون رو قبول کرد و با اشتیاق گفت من حاضرم. و مطیه شما هستم. هرچی شما بگین پدر و مادر عزیزم من همونو انجام میدم. بسیار خوب ما فردا تاریخ عروسیتون رو معلوم میکنیم هایرانگ اونقدر خوشحال بود که دیگه خجالت رو کنار گذاشت لبخند میزد و میخندید مادرش که نمیدونست دختر در حقیقت چی میخواد گفت آه دختر بیچاره چرا راز خودتو زودتر از این به ما نگفتی حتما مدت زیادی بیخبری از ما خیلی رنجی کشیدی. به هر حال به نظر می رسید خونواده های شادی خودشون رو به دست آوردند. وقتی که پدر و مادر درباره مراسم عروسی صحبت می هایرانگ به اتاق خودش رفت و تو اتاقش رخت و دامن و بلوزایی رو که برای عروسیش آماده کرده بود بیرون آورد و با خوشحالی به اونها نگاه میکرد. اما روز بعد نجار جوون از اون دهکده رفت. هایرانگ وقتی فهمید شوهرش اون نجار زیبا نیست بلکه گامشوه هست. پسر همون آهنگر هایرانگ دیوانه شد. اون در نزدیکی جایی که اولین بار نجار رو دیده بود، رفت و قوقایی بپا کرد. پدرش خبردار شد و سعی کرد مراقبش باشه و اونو آروم کنه. اما دختر دیوونه حتی پدر خودش رو هم نمیشنخت و میگفت او عزیزم، چرا الان اومدی؟ خیلی وقت منتظرت هستم، دیگه منو ترک نکن. که در آهی کشید و گفت آه دختر بیچاره چرا به من نگفتی که آشق نجار شدی؟ باز هم دختر میگفت منو ترک نکن با من ازدواج کن با من ازدواج کن طولی نکشید که هایرانگ در حالی که دیوونه وار به دنبال نجار جوون میگشت از روی یکی از سخراهای ساحل به دریا افتاد و قرق شد عجیب اون که بعد از کشته شدن هایرانگ برای ساکنان دهکده ی آنین جین حوادث تلخی رخ داد ماهیگی را به خاطر غرق شدن قایق هاشون دیگه نتونستن ماهی بگیرن بدتر از همه روح این دختر هر شب به دهکده میومد. به نظر می رسید هواخواه مردون جفون شد زیرا همیشه بر اونها ظاهر میشد بسیاری از مردای جوان مریض یا دیوونه شدند اما در میون اونها مرد جوون شجایی بود که میخواست روح رو بگیره این مرد جوون شب در جایی که روح معمولا اونجا ظاهر میشد به انتظار روح موند نیمه شب روح ظاهر شد هی هی هی هی پسر جوون با من ازدواج کن هی hey, با تو هی hey, اگه نری شمنا رو صدا میزنم و از اون میخوام به درگاه خدای محافظ دهکده دعا کنه و از او بخواد که تو رو بگیره دور شو شمنا پس آرزوی منو برآورده کن. خیلی خوب. میخوای چیکار کنم؟ من روح سرگردان هایرانگم که قبل از ازدواج مرد. خب که چه؟ در نزدیکی سخری که غرق شدم معبدی برام بسازید. در داخل معبد هم مجسمه یه مرد رو بذارید. این کار را می کنم اما واقعا از ما میخوای که مجسمه یه مرد را اونجا بذاریم بله اگه اونچه میگم انجام بدین دیگه هیچ مصیبتی رخ نمیده ماهیگیرها هم ماهیهای زیادی میگیرن روز بعد مرد شجاع تمام ماجرا رو بازگو کرد بنا به پیشنهاد او مردم دهکده معبدی روی صخره بنا کردند این معبد همون هایرانگ دانگ بود که به یاد هایرانگ الهه دهکده ساخته شد در معبد مجسمه مرد جوان زیبایی رو هم قرار دادند این مجسمه رو مردم دهکده به درخواست روح اون دختر ساختند میگن بعد از ساختن معبد اهالی دهکده آرامش خودشون رو به دست آوردن و با خوشی در دریا ماهی می گرفتن. هنوز هم میتونید این معبد رو در دهکده ماهیگیری آنینجین در پنج کیلومتری شرق شهر کانگ در استان کانگ ببینید.